آیه ظاهرا 144 سوره بقیر آل عمران. افا اما تاو غتل انقلبتم علا اعقابکم کن تفسیر عیاشی و تفسیر علی ابن ابراهیم قمی نقل می کند که اولی و دومی چون خونده بودن یعنی شنیده بودن پیغمبر که از دنیا بره خلافت چگونه می شود و امکان دسترسی براشون هست که غذایاش مفصل بعد ارز می کنند. از طریق دخترهاشون زهر به پیغمبر خورنده که زودتر پیغمبر از دنیا بره خلافت بهشون برسه حالا وارد بحثش میشیم از